سلام و الحمد لله رب العالمین صلحت و على و سید المسلین بعد ما در درس کدشت بحث حتی وجه الله صلی اللہ علیه و سلام بعد از آن الله صلی الله علیه و و بعد رسول الله بغار و آمدن جوریه بنردیشان و بعد از آن بحث برای الان رسیلیم شروع دعوت رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در جبریل و و در مستقیم رسول الله صلی علیه و سلم بهش خبر میده که شبیه و و شکار و شکار نکنه دعوت رسول الله صلی علیه و سلم سریا درشت حتن که سرگی یعنی اونطوری که مفک میکنی که بعضی ها میگن الان که موجه در ایش زد مثل روایت که میگه که مثلا در سال رسول الله بود و بعد در بجه روایت هایی مثل بلازری مثلا یک چهار سال که نداره و ان ختم در اشت و اصحابان میشنی نگوشن لیکن که اگل سرگیت هم نباشه به نه. رسول الله صلی علیه و دعوت کیلی دادند. کماویشی که می و ارتماع داشتن دعوت مستقیما میدادند و اشخاص زیادی هم وارد اسلام دادند. ما آخرین قصهی قصه که داشتیدن وقت اسلام آوردن اگر حاضد قصه صدیمه ی وقاف وقتی که اومد اسلام و, و مادرش قسم کرد که دیگه غزانه کورد از روز نشست در خانه تا اینکه فرزندانش فرزندان برادران فرزندان برادران اومدن با اشهادهانش بود که و به زور در در دانش برو بودن اب این قصه سرد اومدرانش مادرش زیادی همینجوری مسلمون میشن یعنی مثل از هایی که هست در بحث ایمان آوردن، وقتی که رسول آزام الله عزیز از یکی نویم در سحرای منكه از منكه بیرون میرن و عبدالله بن مسعود میبینن که همراه بزرگانهای دار سالاری میکنن ابو بکر رضا الله عنه و ممه و عبدالله بن مسعود دریافت میکنن که یکی از این گروه ها رو بمب می‌گیر تشکلیل بخویم عبدالله بن مسعود میگه انی مؤمن و له من امان دارم و اینا امانت از درز من و من نمی کنم به شما بدم خب میگه اجازه میدی که ما خدا رسولات صدقال الله و علیه و سلم از نیشان در خواست می کنن. اجازه میدی که یکی از این بزه هایی که شیر نداره و بچه هم نداره یکی از اینها رو من بگیرم و بدوشم و شیرش بکنم شیر, شیر نداره دیگه. این که ضرر این تک وارد نمی از یکی از بزه ها انتخاب بزه هایی که شیر نداره و هنوزم ناحوم له مات نباید شیر میاره الله صل الله علیه و سلم دست خبر اون بدوشن بل از دا میدوشن و شیرز های اون بود شکیده میشه و الله صل الله علیه و سلم از اون شیرهام میخورند میلیشند ابو الله با رسول الله علیه و اینجا بید که من و خودشی بید رسول الله صلی علیه و سلم بیمان معلم من شیه تبین سورا ما احد میگه رسول الله صلی علیه و سلم بیمان بیمان یک جوانی تعلیم که و قدم از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله اعتقاد ولادت او خیلی طولانی است. علاوه بر این، اسلام آوردن خودش، علاوه بر این، اسلام آوردن افراد زیاد داشت. اشخاصی که مسلمان شدند، از جمله مثلا عمرو بن عاص سلمی عمرو بن عاص یکی که من شخصی بودند که دنبال اسلام دیدند و شریدم که پیامبر اومده. اون تغییرش من وقتی که دیدند پیامبر فرستاده شده اومدن به مکه. و اومدم با رسول الله صل الله علیه وآله مناقض کردم من اونها این همه, همه در همون سال اوله. است میگید که اومدم در نزد رسول الله صلی الله علیه وآله و گفتن که من میخوام اسلام بیارم بعد رسول الله صلی الله علیه و وآله گفتن که هنوز بشتی نگیم برو به طرف قومه تا این که خبر از به من بهت برسه و اون اسلام تو اعلام بکن در همون حال جلا مسلمان شد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدير ونزي الوصفة لما يصوب لكنا رسول الله الله عليه وسلم دران كلاوات لكنا إذياء الجن تدرسوا مشتبان تكسريك دراح لك ويسون غاية كلام لنبدأ للعواج الملكة نوانا فاعل ذلك ويأت شهين ناظل بشي يا قومنا ولو بدأت انك إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به ولن نفرك بربنا أحدا جنیان اون بعد اینکه میشن ایمان میارن رسول الله همون ها رو ندیده بود تنز مکلف نشده بود که به اونها تکلیف بکنه بعد از این خداوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی می‌کنه و می‌فرمایند قل اوثی الی یا فاق اخرت برای جنی کالا ایمان در رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته میشه بعد از رسول الله ابلو شیخ البلد جنیان هم به دعوت تشوش دادن پس مواظب اونها هم باش و سعی بکن که هم چیزایی یاد بید. خب تا اینجا رسول الله و اللہ علیه و مستقیمن وارد نشده که دعوت بده تا اینکه این آیات ناظر میشه با اندر عشره شکل اقربی انذار بده انذار دیگه علنیه دیگه اینیس در رو دردو و بانها صحبت رو هم رسول الله صلی اللہ تو وآلہ تقریبا گاله کول سفا کول میشه. تقریبا هلوش پنجه متری کعبه واقع یا پوریت و یا بلی هاشم و یا فلان و اعظمانات همه اون چهارده نسل پوریت را صدا میدنند فلان و فلان جمع میشن جمع میشن و رسول صلی اللہ علیه و سلم چنین سطح برو ها میده میگه که اولیه تکن لو اقوال تکن انا خیلن تحروج و به سطحی ها دل جبل اکنت المصدقی می کنم این که رسول الله صلی اگر من بهتون بگم که این کو الان از ازش میخواد بیرون بیاد خوش اینکور عصبی هست آیا تو از من باور می کنیش خب الله که خبر اسلام امان دار صادق بخش بخش بخش حجب رسول الله صلی گفتن که این امینه و این صادقه این قبول لا ای که کردی این جوان نیست همه ی اخلاق تواضع ارزش قابل قبول داشتن خب گفتند ابو از که آیا راضیا فرمودید که قبول داری این من اگر من خبر بدم این ما جواب یعنی ما وقد عندما انسان میخواد که حوادث و جهت برونو او بده حالا بعد می, کنند. می کنند که دلوقن دلوقن دلوقن. بعد از این حادثه فوراً تحقیق می الان خودی نثار می که ما حالا دلیل واسه ندیدیم بعد از این خیلی کمان اندکی روشو میزننی قال فاني نذير لكم بین يدي عذاب شد من مدته بهتون انذار داد قبل از اون عذاب در مات خداوند خداوند عذری در ما داره به خداوند برمی‌گردی که خداوند خدا ربا زدگی همین چیزی که داشت شما نمیخواد فقط از شما میخوام که خدا برگردید اگر انسان هلال بکنه یعنی از دو روابط مواصفاتی که مثلا تا در زمانهای قدیم میشه و شده هایی که بین قبیله ای و میقابل قبیله یک یکی به فرض میره از قبیلی رو میکنه در یک قبیله ای دولو وقتی میگه قرر انتقام یا مثلا داشتی که شخصی مثلا قومی کوشش کشش دلوده. باید میشکم بدان که من فصله. یکشانه، خوام میشومیان بناش بیشان بخاطر که از این فصل دوخته. ولی راستش از الله عزیز باتش میکنه کدکوره. تا دکترین، آمین دکترین، بناشاب و غورثاب دکترین. از دیگه پوش میشه خود مقدرت الله عزیز باتش. هنی امیرت الله عزیز باتش. امروز حالا دیگه این دعوت را صورت نمیکنیم. تو وقتی دنیا آخر امرشه، یعنی ده سال دیده که است. این هم مزدلت ازشان دیده، هرکاش دیده بر شنیده و میدونه که برخاسته، لیکن با وجود اسلام نمیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم که من نمیتونم بتوانم بگم که باید کشفات کنه که با خطری نفوذ کرده اسلام که از آبشان دیده، از آبشده. اینی برخاش که مظنفش میشود. و نجاتم پیدا نمیکنه. بحث همین که رسول الله با وجود این سرت. تنها چیزی که ازشون خواسته بود همین هستون که شما به خدا برگوزایی موزی باشی وارزه کردن او رو بیرون کردن الان میاند شما چطور رسول الله علیه و وسلم وقتورد کردن چه ازیادت هایشون هم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در همین چیز در بحث انذار دادن الان روایتی به اینکه زیادی هست از اون روایتی که ثابت در بحث همین انذار و اینکه رسول الله باریت یوتفا انظار میدن به که, که و نیگه تب اما جمعه سلیل قام و نظر این بلند میشه همون زبان خود این رو نیگه برای که که, بره بره که هست و هست. نیه که کنند که به روزی هم میره و این طور ناغذی صدبتی در این و تر مقرنه ما برای ما کسبتا سوره بعد از این حادثه بس عبوزر بخاری هم هست در رحی بخاری و مسلم و مدر قصر که خودش دنبال حفت بوده توجیه رو داشته بدترست نبوده مردترست نبوده خودش میگه که من انسانی بودم که نماز برای خدا میخوندم قبلنا ہم نے بھی لیتے ہیں ہم از بود تو الله علیه و سلم و میاد به ولی وقت صلوات میاد و میشه علی الله علی رحم ملاقات میکنه بعد علی از الله مدام پیشی نمیگذره میگه فاطمه علی و و عن یه که بید کرستان غریبی هست زیافتش میکنه، کنه میده و میبردونه و هم باشه این مشکل از فول پیدر پیش مثال پیدا میکنه. کنه تا که از علت آمادنش به مکی خبر می ده به علی الله علی بهش می گه من میگم سردا به الله ولی به کسی چیز تا که اگر اشار دادم بگید که یه خبری کسی زیر نبید چون کسی خب میگه. من سوف يكون منذ الله صلى الله عليه وسلم فبما يكون حبار جاء بات الله صلى الله عليه وسلم في اشترك منك برب ثلاثة قومت النبي صلى الله عليه وسلم ارزأ الى قومت فأخبرهم حتى ياتيك أمري منك برب ثلاثة من خبره شو انك من ترك روحنا منك قال والذي نأتي لا لأطلخن بها بين برانيه يقول إنه قتام خداك من در وسط المشركين عنهم داد ميدان يقول إنه خدش نيك فخرج حتى أت المسجد ومن در الحرام فنالا بعل أسول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادات ميدان مثلا لأسنان محمد رسول الله يقول إنه حتى أخذعه يقول إنه قتتت زدن إنه قتتت زدن كه بزميلش عن دفتن تقول إنه قلن شدن اگر تجارت بنی قصار از ما بند بشه ما چه کار بکنیم؟ اگر اون نیان دیگه وای بندان. و خود اونها میان انتفاق از ما میگیرن. میگن اونا را بلند نمیخوره بر از پول بلند میشه برون میشه. اخر بشه آخری بحثمون از بحث که اسلام مبادن بحث و مواد و بضات و من شخصی بودم در زمان جاهلیت که اگر کسی دیوانه شده بود، جن شده بود، در ضمن محلی حدی پرنیز موزالات geldi، یک ایاتی که چینی شده بود، من روش میخونم. روش میخونم روغیان ی دار شعر های داد از سخن جاهلیت که میگفتن بل جنار مثلا ال بدن و طرف بیرو میکرد. یکی اومدن به مکه و گفتن که نزدیک این دیوان نرو. نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. فقط از دیوانه هم که علاج دست من. من میگم که فالش از مادر متا از مادر جیج و مادر نذر رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رسول الله من خطبه من بعد از محمد الله عليه و سلم چه اینفام یعنی خطبه چه می برسول الله صلى الله, الله عليه وسلم هو نجات بذرة من جنات أقوى القديش بدون بكرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نجى بذرة من جنات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بعد مجانك شاء الله إلى حيل الله ما يهد الله فلا مُضلَّه وما يُضلَّفَ لها. إلى الله شاء الله الله محمد عبده ورسوله أما بعد لإنجامي النماذج أحد كلمات هؤلاء. لم يكن يعني خطبه لأن الحمد لله نحن ندوان السعيم أصلا خطبهم دل صحيحين أخيراً أحد عليها كلمات لها أولاك هذه كلمات ليست دوباره من تكرار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبا رضي الله خطبه تكرار بكنا إن الحمد لله نحن ندوان السعيم بس إذا ما طلعت دجلة قد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلمات هؤلاء ثم أسلم وبايع نفسي وقوم لما ضيئ إيمان قلت جفت هاي الكهان جفت هاي الص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص خصص دیگه نسبت به دی خانوان زیباییونه نشیرا نه در اونجا اینکه اسلام میاره و اسلامش رو نشونش دقیق اعلام می‌کنه خب این شخصی که می‌بینیم کارهایی رو می‌تونه چه بگم مثلا جن رو گرفتن از جادوها میاد داخل مسجد اینا هم رو اونقدر جن رو بیرون می‌کنه اندفه خودش بده اون شخص در همون جا مسلمان میشه و اسلامش رو اعلام می‌کنه و بیعت می‌کنه با رسول الله صلی الله علیه و آله و و آله سرات این خلافه بحث کثمانی که را اسلام و ازنان خلاف های زهید هم جیاد هست بحث سرسی رو نگذیرن رسمن ابن مغلوم هست دیگر صحابی, صحابی هایی که در فسته یا در ورش و گفته شده دیکن الله به عزت اون ربایت من اکتفا می کنم این ربایت های زهید انشالله خلافه یا هم در بحث اذ يذيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله واستغفروا الله عليه الله وبحمده سبحان الله وبحمده صلى الله عليه وسلم